بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله واسكنه فتيح جناته ورزقنا وياه جنة الفردوف ومرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء باب الاستطابة باب الاستطابة أسل كلمية استطابات استطابات الطيب يا الطيب طیب یعنی بوی خوش بوی خوش نگاه بو بکنید کلمه های عربی الان یک کلمه رو یاد گرفتید طا و یا و با طیب و واطيبته و طیب والاستطابه همه برمیگرده به بچی، به ستو حرف اصلی طیب طیب طیبته او طیب واستطابه این حروف اصلی کلمه رو یاد بگیرید که خودش همین یک کلمه در ده ها جاها یا در جاهای زیادی ده ها جا میتونه استفاده بکنید یعنی از همین کلمه خودش ده تا کلمه دیگه مشتق میشه طب پس خود استطابت میشه پاکی و یا تمیزی و بوی خوش حالا این ربطش به این باب یعنی معلیف اینو میخواد بگه میخواد بگه که استطابت با استطابت یعنی اینکه احادیثی که احادی پاکی و تمیزیگی را در بر میگیره خصوصا اینکه نجات تا وقتی که با سنگ یا با آب پاک میشه اون بوی کثیفیش از بین میره بوی کثیفیش از بین میره خود به خود بوی انسان به حالت طبیعیش و حالا پاک میشه و بوش خوش میشه خب بعد از علما حالا مثلا اینجا میبینیم که مؤلف استفاده کرده از استطابت بعد از ما باب قضای حاجت اسم شو گذاشتن قضای حاجت و آنم به خاطر اینکه رسول صلی الله علیه و سلم اذا جلس احد اکم یقضی حاجته اذا جلس احد اکم یقضی حاجتتی نشد برای قضای حاجتش یا برای این که حاجتش رو دفت کنه همون ادرار و همون مدفوع که انسان میخواد تحلیهش کنه داری از علما خب مؤلف استثابات گفار برد بعد از علما باسم تخلی تخلی اذا, اذا دخل احدا کمو الخلاف او سن پس خلاق عداب خلاف یا باب خلاف و بعض از دیگر از علما گفتن باب تبرز تبرز از براز میاد البرازو ف الموارد که در حدیث اومده این هم یکی از اصلاحاتی که به کار برده میشه به همش هم یک معنا میده و اونم پاکی پاکی از نجاست و یا پاک انسان خودش رو از نجاست پاک بکنه از اون مطقوب ادراری کدش خارج بشه. خب اولین حدیثی که ما داریم که از دیستان لطوی کنه میکنه حدیث انسل دمارک نگوش قال مالك رحمه الله الخلق عن بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلق قال اللهم إني من خب اين ابن حديثي ما داري من انس بن مالك انس ابن مالك از صحابه صغار در خانه رسول الله صلى الله عليه وسلم تربیت شده و, و بزرگ شده أناس ابن مالك خب شخصي بوده كأحادث الزيادير برائمان رغاية كرده بعد أبو هرد بعد رضي الله عنه جزء مكسرين من أصحابه أناس ابن مالك رضي الله عنه أناس ابن مالك معروفه كأم الجميل بيه در نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر قسم كنن يا رسول الله ادعو لهذا الغلام يقول الرجل من الغلام دائم كن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم كن اللهم باركي ماله و أولاده انه از نانه من یک شخص فقیری بودم که هیچی نداشتن در بین انظار میگه تا جایی که خدا به من مال داد که فکرش هم نمی کردی و تا جایی خدا به من فرزند داد که میگه من خودم در, در مقابل فرزندانم شرمنده شدم میگه که از کمر خودم نبهت خوردی خدا من بچه زیاد داد از کمر خودم و نه بچه بچه شا بچه خودش از اززواج میکرد خب محمد بوده آم زیاد کرده جز کسانی از, از اصحاب هم که زیاد حام کرده خب ازدواج میکنه زنش پشت میکنه از این زنده تا از اون زنده تا و غیر از این کنی داره خب ما شالله نمده خوردی این دعوت رسول الله خداوندم به شما بده برکت در مالتون برکت در فرزنده که انشاءالله امت محمد را زیاد بکنی و رسول الله صلی الله علیه و سلم همین توزیارا میکنند که با که ازدواج هم الودود،, الودود،, الودود،, الودود و الولود الودود و که هم بود داشته باشه هم خوب باشه اخلاق که داشته باشه هم ولود باشه بچه زیاده نگاه بکنید در خانواد اکنوم یکی بچه زیاده بچه زیاده داره این عادتشون یعنی جس مهمه نگاه با خوشگلی و خوشدیپی نکنید نگاه و قدرت و توانمندی بکنید این مهمه ایک از شروط انتخاب یک زن که یک زن و نمیزنم این مسائل روز بهش ما همیت نداشته باشه اهل نمیدم آرایش و آرایش این مسائل نباشه اهل تربیت باشه اهل نمیدونم بچه باشه همون تو کراسوف تعریف میکنه از زنهای خورش میگه که زنهای خورش خروبیشون این چیه خروبیشون چیه؟ به شوهر نزدیک خدمت شوهر میکنند و با بچه شو رقیق این خسط رو داشته باشه این خسط رو دلو به چشمتون باشه همطاری ک این شروط این شرط سلوط محتمل رو داشته باشه خب بردی که دیگه از خط توبور کردم خب پس رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با دعوت دادن و تبلیغ کردن زیاد نست و هم در دعا کردن به اطحاب تمرتی نکردن دعا کردن در حق نست که پردنده هستی میگه تا که سنن بالا رفت میگه شرمونده شدم یعنی در مقابل فرزاندام یعنی در بعد روایت الومد صد و سی بچش خوردی بچهش میگه شدم با دست خودم تو قبر سن دفتشون کردم این هم از و نسل الله عنی باید خب روایتی که در سسلی صحیحه اومده اون چیزی که صحیحه نبدو خود سسلی صحیحه شما را شید این از ننوشتم این از جمله جزء گ مناسبت دیدم و گفتم خب مالک میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه وارد خلا می شدن وقتنانی گفتیم برزدانای آداب خلا خلوت خلا بمعنی خلوت خلا جایی که انسانallah قضای حاجت میکنه و خلوت میشه و متصل میشه از چشمای مردم کسی که شف نمیشه. بر جای خلوتی که چشم کسی بهش نرده. و اصل این کلمه به جای خالی گفته میشه. تا جایی که الله خلا دیگه اطلاق شده برای مکانی که انسان قضای حاجت میکنه. نه که در خانه هم باشه. هرچند که در خانه باشه. خب میگه قاله ربنا اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ای خدای پروردگار من به تو پناه میبرم از خبث و خبائث خبث معل در فاینش یک ترجمه یک کتابی داره میگه خب ب و ملها و خبث جمع کبیث خبث جمع کبیث خبث میشه جمع خبیث خبیث از جنّیان خدای پروردگار من به تو پناه میبرم از جنّیان مرض و الخبائث جمع خبیثه خبائ الجمع خبيثة السعادة من بكران الشياطين وإناثهم رسلنا صلى الله عليه وسلم فنخبرن أن نرى ماضي الجنين فسبحانه ما يعذوكم من الخبودي والخبائ كم موضوعات هذا بعذمن موضوعات فقهية إن هذه غيرت غير الأداب وشوفنا بدر معانيش أولا مشروعیت گفتن بسم الله قبل از این ذکر و این دعا انسان بسم الله بگه خب الان بعد میمونه پای چه پایی خواهد همه این مساله بود پیدر پیخ و هم دو لیکن الان آنما اختلاف دارد که انسان این بسم الله و این دعا را هنوز وارد نشده بگه پایش و گذاش بگه یا وقتی که رنسوش بگه همه اینها هست لیکن حده وسط انگامی که بخواهی پاسو بذارید داخل پاسو بلند کردی بسم الله من عزو کمنال قبطی و این بسم الله خیلی از علمات از کردن لیکن علامه البانی تحصیلش میکنه کنه خوصا که در نزر ابن عبی حاسم اومده و همچین در نزر ابن سکن و میگه که با تعداد این طرق این در از این حدیث و جای حسن می رسد در نتیجه بسم الله گفتم مشروع هر چه که این حدیث اختلاف در تصحیح و تردیدش اختلاف قدیمیه است یعنی فردی کدیشینی نیست که بگه این حدیث ضعیفه تعجب نکنید چون جمهور رو حدیث این بحث تصحیح خیلی از محدثین تصحیحش کرده چون یک حدیثی که ضعیف جدا شد دیگه حالا یک شخص چه ضعیف جدا بدونه یک شخصی ضعیف بدونه ببین این اختلافات خاص مثلا وقتی مرتضی کردیم بعد از ابن حاز فتح گران کا تن این با تداتو رو قیاساً به درجه حسن نمیرسه بعضی از ائمه ترجیح میدن که نه به درجه حسن میرسه لیکن بل سازن این حدیث بالا بسم الله ثابت نیست که امام Lucky بود که من خودم نوشتم از یادم رفت لیکن بعد از ائمه اجماع نقد کردن در این که جایزه که کسی که میخواد وارد خلا بشه وارد قض... وارد اون محلی که قضا حیات میخواد انجام بده اجماع نقد کردن که جایزه قبل از ورود به آنجا بسم الله گفته بشه خب چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم این ذکر را مشروع دنستند و این ذکر را گفتند ایلت ها مختلفه یکی اینکه انسان،, انسان بیاد خدا باشه وقتی که به این جاها میره دو اومد این که اون جاها جای نجسی و جای شرسین و جنیانه رسول الله صلی الله علیه وسلم خواستند که چی؟ که امت اسلام از این شهر و شرور به دور باشن در نتیجه به امتش یاد دادند که اگر میخ این این جاهایی بشن به خدا پناه ببرن میمونه این مزئله و اونم این که بعضی چیزها هست میخوام پیدا پیم بگم تریب بگم که شما هم خطر نشید لیکن یه هم بینید که نبیانم کجا رفت از ذهنم ترید خب رسول ما صلی اللہ علیه و سلام وقتی که وارد میخوستن وارد درشی یا توالد بشن می گفتم بسم الله اللهم انی اعوذ بک من و این اظهار عبودیت ها. اظهار بندگی در مقابل خداوند که انسان همیشه بیاد خدا باشه یاد بگیر یک بنده مؤمن که دین خوشپترین چیز رها نکرده رها نکرده که چیزهای بزرگ رها بشه دین همه مسائلی که مورد نیاز بندگانه بعد یعنی خداوند اومده اون دین را بیان کرده به نحو الا اليوم اكملت لکم دینکم اون چیزی که دینه دي و تدین و و نیاز بندگانه و با غیرت وحدت نمیشه خداوند به انسان خبر داده خداوند به بان انسان خبر داده با وحی به رسول الله صلی الله علیه و سلام به خاطر همینه که سلمان فارسی میگه میگه که رسول الله علیه و آله از علمی برای ما کتمان نکرده و رسول خود در صحه مسلم داریم که میگه هیچ خیری نبوده که مگر اینکه من به شما گفتم و هیچ شری نبوده مگر اینکه به شما گفتم. پس لازمه گفتن رسول الله اینه که دیگه دین نیاز به بدعت حسنه هم نداره. دین نیاز به بدعت حسنه نداره. دین کامل شده و اگر کسی ادعا بکنه که بدعت حسنه حتی رسول الله دین را کامل به امت نگفته و یا به عباراتی که بعدی میگن رسول الله خیانت کرده و حاشر صلی الله علیه وسلم خب این یک از مشایل مهمیه این از کمال شریعت اسلامی قدر زیر ایمونو بدونیم که خداون بند چقدر رو دوست داشته که این شرائع و این ها را یاد بده که خدای نکرده بندگانش آسیمی نبینه از او چیزهایی که بهش درر می رسونه یک مسئله ثابت در احادیث صحیح که یک از به بیر, بیر اومدن از درشوی و تولیف اینه که انسان منطقه موقعه بیرون آمدن بگه غفرانک. بگه غفرانک. سوال اینجا که ما مطرح میکنیم. این غفرانکه چه وجهی داره؟ چرا غفرانکه؟ چیزی دیگه نیست. چیز غیر از این کلمه غفرانکه نیست. مفهوم معنی این کلمه غفرانکه چیست؟ اونجا گفتیم پناه بردیم از این که داخلن حالا اومدیم بیریم میگیم غفرانک یکی از اونجوری میگن که که چون انسان جایی بوده که از یاد خدا غافل بوده خاطر همین خوبه که انسان غفران غفرانه حالا این همه وقت در طول روز از یاد خدا غافل بودی حالا اینجا بگیم غفرانک سوال اینجا، پس ما باید در روز الله و اکبر یالهواما دیگه چیز باید همچنان در روز باید اتفاقار بود خدا ما رو به واسه آفرش ما رو به واسه آفرش خب اگر وجدی داشته باشه پس باید آدم باید خودش شب روز. باید همیشه با خودش کوچک بلندتر شب روز بود همیشه بخواد متذکر بشه وقتی که از ذشی وی رو میاد بده اینجا که من دو, دو, دو مشغول ذکر رو نگفتم. گفتم, گفتم. پس چی بقیه وقتم که جلوی تلویزیون نشستم و دنیای ما همه منعوله مافیه الا ذکر الله و مولاه خیلی مهمه که بنده با ذکر خدا باشه که جز ملعولی نباشه و جز چیزهای بیهوده و چیزهای بدعرض نخورنده همیشه بدر بخور بخویش یا برای خودش یا برای دیگران این یک وجه علاوه ابن عثیمی یک وجه دیگر رو میگه میگه که مناسبتش در اینجا اینه که انسان وقتی که از دشی بیرون میاد خب یک عذیت یک کسافتی هایی از جسمش خارج شده یک نجاسه از جسمش خارج شده خدا پاکش کرده ای خدا این از من پاک کردی گناهانم از من پاک کن اینها را از من پاک کردی بس اینم از من پاک کن خب این ترجیح علامه ابن عدمی میمونه سوالی که مطرح میشه شما شاید شریعتی باشید که بعضی از قدیمی‌ها گفتن اونایی که تشکیل میشن و یا رحم همراه جماعت میگن که وقتی که وارد دشویی میشی باید سرت پوشنده بشه الله این دو تا آدام گفتی آدا اول بسم الله اللهم انی الک انقص الک و خبای وارد شدی میرم میخواد بیاین افرانه خب الان یک از آدا و دیگه چیزی میشه سر پوشونده بشه آیا وجه جلعی داره دلیل و مدرکی داره یا نداره عن حبیل النصالح قالت قال کان الله الله عليه الخلاء با این حدیث راسته میشه حقیق با شافعیه بیشتراللهمیکنه نعیم رسول الله که وارد خلاء میشود داشتی وقتی وارد مکان قدر خالج میشود دمپایی بکشند و سرشون این حدیث هست. غیر زعفی که درش هست مرسلم حد. و در نزد ابن علی در کامل جلد 6 هم 293 جلد 6 صفیه 293 با اسناد موضوع اومده در اسناد شخص فضاعی هست که این طریق هم به ما گفتیم حدیث زعیف زعیف جدا باشه کسانت در طرق دردشو شدیتر می کنه یا نکم کرد لیکن حالا حدیث شد موضوع عديد سوديكي هم ضعيف جدا. الآن مين من؟ يعني خلاص نكر حرامه درسني. دليل ديجان مين؟ نعم دليل ديجان هم. هم الصحابة هم الطبيعي. أصحابي باطلة صحيح. در مصنف المنشية. جلد ده أبل صفيثة. على يبقى قال وهو يخطب الناس. يا معشر المسلمين استحيوا من الله. هو الذي نفسي بيده إني لا أظل لا أظل حين أذهب الغائب. في الفضاء مغطي رأسي أو مغطي رأسي استحياء من ربي استحياء من ربي يقول أي مردم أي مسلمانا اتخدا شهر بكني قسم كذلك جانبان داد الآسوز من ميرم براي خضائي الحاجات و هنوامي كميرن سهر خدم راه ميبوشن شهر ما اتخدا اجتهاده درسه؟ اجتهاد از خود این صحابی حالا یک مسئله هست در بحث موقع فات اجتهاد از خود صحابی که در ضمن مفضل حدیثم قاهد اومد چه موقع اجتهاد یک صحابی یا قول یک صحابی حکم مرکول داره میگن شروعی که میذارن اینه که یک از شروط این که در مسائل غیبیات باشه در مسائلی نویزم که قبلا رخ داده اجتهادی نباشه حالا این مسئله جزه کلومی یک از مسائل میشه؟ غیبی که نیست. مسائل نمیدونم اون چیز رخ خواهد داد و رخ داده که نیست. بحث آسان و بهشت هم نیست. میمونه یک بحث فقهی اجتهادی درسته یا نه؟ مثلا گفتیم که در ضمن موقوفاتی که فاکم ارسول داره اجتهادی هم نباشه. اون چیزی که من نمیش میکنم اجتهاده او بکره او بکره او بکره او یک صحابی در نظر عیم اختلافه که آیا اجتهاد صحابی حجت یا نه؟ در نظر جمهور حجتی، در نظر حنابله حجته، ما که که قیم ترجیحش میده، حجته در, حجت در باشق سلوطی. این که این مخالف مرسول نباشه، مخالف نفت قرآن نباشه، مخالف با دیگر صحابی دیگری، قل صحابی دیگری نباشه. حالا این مطاله که ذکر میشه، لیکه؟ اون چیزی که نفرش مطمئنه مادامی که مسئله اجتهادی غیبی نیست در بحث اعتقادی بحث حجتیت بعیده که مثلا که مثلا ما یک اجتهادی یک صحابی مادامی که مخالف نداره حکم مثلا سنت بشگیم حکم سنت دادن و مستحب دادن سخته حکم مستحب دادن با فعل یک صحابی اجتهادی یک صحابی سخته تو بگی مثلا بالفرق در مقابل کوشینن ترز هنگام رفتم به قضای حاجت اج سخت این من بعید میدونم دیکنان رو مبحث برمید به اصولت و توجه فقی که جای خودش داره همچنین یک صفحه بعد از اون از تابوس نقل میکنه به نمیشه به واسطه صحیح بازم که یک از آداب خلا آداب خلبت و قضای حاجت حاجت را پوشیدن سر میده اینم تابعی و صحابیمون اولا بس این کار نمیشه کرد حالا اگر کسی به فرض این کار در لفظ سنت میشه کرد که این سنت چی عاده به افطوس داری مثلا به فرض سرتش نمی‌است باب مثلا حمزه اول که گفتن شرم شرم حیا از خدا میشه سر پوشی کنه حالا فقط ذاتی خودشم هست حالا اون وقتی که اول گفته بس اینی که وقتی که من میرم به قائد، قاعد ممولن در زمان صحابه می بیرون از شهر می خدای بکنن می بیرون از شهر. در خود شهر اون کار انجام نمی دادن می رفتن بیرون خیره ایک جوی خلبتی که کسی آنها رو نگیره و خاطر همی میگیم من میرم در جوی خلبتی از خدا شهر می کنم. چون بالا دیگه سختی نیست خودش من از بالا شهر میکنم کنم از خدا شهر می و یکی چی؟ خداوند بالای عرش خداوند بالای عرش همه جا نیست من از بالا سر کنم از خدای شرمی کنم که میخوام بلاترم سر چیده باشه که منو ستر بکنه. خب یک مسئله دیگر یه لاکه هست بذارم برای تحقیق تحقیق بکنید شکم وارش شدن در با و پای چند شکم وارش شدن برای تحقیق خودمان در طبت دیریم که انشالله چه عدلهی هست در چه به عدله این خب آیا حدیثی هست در این زمین حدیثم صحیحه یا نه میبونه از جمله آدابی اونایی که فرق خوندن از شجاع خوندن در کتابای فرق میبینیم که این مسئله هست یک شخصی وقت قضای حاجت بیجینه میخواد دستویشو بکنه روی پای چپ اوناس فشار بده روی پای چپ فشار بده ری آیا در یا ندارد بذافاری زید حدیثی داریم نزد به حقیقت الدابه 896 با سندی که پر از مجهوله پر از مجهوله قال صلى الله دخل الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى که پای رو فشار بده نفس بکنه دیگه پای چپ پای راستشو بالا بیا یعنی خب پس حدیثم شد نادرست و اعتماد بر پای چپ یه برمیگرده به خود برای یک چیز هست از لازه پدشکی یک اصلی دارا اگر شما نگاه بکنید شب که میخوابید دست راست میخوابید یک مسئله پدشکی داره شدخونم فشار رو معده نمیاد اگر دست چپ آدم بخوابه فشار رو مهنده میاد و انسان سریح را دستویش میگیره این مسئله هست و چون مثل بیشتر تماییش به سمت چپه فشار اگر با پای چپ بدی خارج شدن مدفور از انسان راحتره. راحت تره راحت تر میتونه قضای حادث، حادثش بکنه میمونه یک مسئله ای دیگه بازم مثل هنوز ما گفتم تا که صحیح هست مطالب فقی، پیرامون آداب و نمیدونم مساعدی که هست، این در صحیح اینه فکر خارج در صحیح نه باید آدم هم ذکر باشه مطلب کامل بشه، نیاز میگه باید آب آب فلان و فلان نداشته باشی همینجا کفایت داشه، فایت بشه شکر میر ذکر خدا، در چی رفت که اصل یک اصلی ذری، آیا جایز کنجا بگید؟ الحمدلله یا گفتن الحب دلاله چیه جایز در نظر عیم مالکیه، شافعیه، و حنابله حرام جایزید یا مکروهه بالعطبح گفتن که مکروهه همچنین الان این بحثت ها در ذکر در الحمدلله دلاله گفتن در بحث انگوشتره که ذکر خدا روشه در بحث کل از کاری که هست سالا انسان تو جیبش قرآن یا تو موبایلت مصحف کامل داریم آیا جایزه که با این موبایل بید توی تنشیر توالت قرآن بیمسته در قرآن کامل جایزه یا نه قرآن کامل تو موبایلت سی جز میده در که جایزه تو نه بله مثل قیاس بر حافظ بگیریم که چی؟ قرآن تو حفظ شد تو که این میموری کارده چه بهش میگن حافظه داره زاکره داره ما هم زاکره داریم در ذهن ما هست اگر قراره که موبال حرام بشه پس باید خله مونم که سرمون بالا بیرون در دشریف داشی در دشریف را دردارا که تن من داخل برکت سرمون بیرون میگن خب حضرت نسیری ثابته که سوال میشه یک شخصی در دشریف هست عصرش بگیره الحمدلله میگه بله چون رسو در سول میدن که اگر عصر دلیم و دیگر الحمدلله درسته این در مدل نبیشه بجل داوسته في سبهشت اولا این از کسا رغایت که ذکر می کنم هر تا از تابعینا و مخالفینا دارم کبار تابعینا یک ابن سیرین میگه که ابن سیرین در جمعه میگه قال لا اعلم بهی بأسا به ذکر الله میگه و اشکال نمیدونم. ابراهيم نتايه باذنيه قال يحمد الله فانه يفعل يربك الحمد لله قال الحمد لله بولا من اين الحمد لله طور درباره سوال ميشه درباره كهتي كه يحمد الله و قول مالكه اما ائمه مالكي بر قول مالكه عیمه مالکیه برخلاق باره مالکم جمهور عیمه گفتن این حرام و جایز نیست یک مسئله ای که هست یکی از مسائل دقیق فقه علامه البانی یعنی بعضی آلا میگن فقه علامه فقه نداره و فلان و فلان یعنی واقع از دقائق ریز رید فقه علامه البانی و برگشت علامه به حوال عیمه تابعین نظر در هیچ وقت آلبانی یک فاولی که از جیب خودش باشه نداره یعنی همیشه میبینید که یک مستلعی داره یا تابعی یا نمیدونم یک فقیه خوش سرش هست که خود باشه که مثلا افتخار خود که نمیدونم خودش میفهمه و خودش علامه هست اصلا این چیز فقط راز بگیرید مخترع نباشید کلام عیمه کلام معه پیش رو در نظر بگیرید و اینکه دین خداوند کامل بوده و کامل هم حدش کرده دین نیاز ما نیازی نداره که ما بیام کاملش میکنیم. هر بوده فهمیدن هر چه بوده گفتن و بیان شده میمونه بله مسائل اجتهادی هست انسان اجتهاد میکنه برثتون لی که بهش رسیده اما اینکه استدراف بکنه برشر استدراک بکنه برشر بر خلاف دلیلی به خاطر ری و نظری بده خیر خواص شود کرد. هیچ جایگاهی نداره و هیچ مجالی نیست بحث انگشته رو کردیم در شمائل در مختصر شمائل محمدی ابن تر امام که ما تحقیق میکنه در بحث خاتمه یا انگشته به واسطه صلی الله علیه و آله انگشتری داشتن خب در مذهب چهار مذهب اینه که اگر بذره خدا تو جیبت بود باید بیرون داشی بذارید الله گفتم ما که بودیم دیگه قرآن میذشتی بیرون می‌گیم در داشی بریم دیگه قرآن نیست خیلی ها کی چون آقا اسم الله نوشته پول عربستان سعودی ها بعدا واسه که بیرون می بیرو می‌گذاشتن این واسه اینم از تعصب مذهبی که سبب شده آقا بنده واسه رو بذاره بیرون بعد بره واسه داشی بشه دیگه فکر نکنم دیگه این شخص بگو اجازه بده که خارج از کنه در چی بره خاطر اینکه بالاخره کجا میخواد تو در که میخواد بده همه جا که نمیتونه که جایی جای معمولی نیست که بخواد رو بیرون بذاره خب چهار مجلس بیان درست نیست آیا مدخلي در شرح هست حالا ما بگیم یک شب شاید دیگه از این تابعینی که مخالفی ندارن این تابعین جایز نیستن که چی جایز نیستن که شرط اگر عزاد الحمدلله هم بگر. خب اگر قرار باشه که الحمدالله گفتن جایز باشه و بر من هم نیست چه برسه پس حمل اوراقی که درش الحمدلله یه حتی کن سبرکم اینقدر گفتیم ادسا ادسا آخر ادسا اومد خب وقتی که اون جایز شد پس حمل اوراق هم از باب اولا و برکر از باب اولا میشه اوراق هم حمل کرد خب بحث انگشتر خب. بوده علامه الباني چنین میگه میگه امام حسن بصری یه وقتی که میبینن که اشخاصی فتوام میدن که نباید با انگشتر و یاد الله وارد رد شد یا قضاء حاجت شد بین تلل میگه می رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت ثابت نیست که یه روز وارد درچویی بشن و رو بیرون بیارن اسم الله روی روی انگشتر رسول شده بود یا نه بود لیکن بیرون وردن نیوردن میمونه مسئله اینکه یک شخصی رفته تو تشویی حوال تشویی الان بلفرد اینکه که اختلاف می در بسم الله که جمهور محدثین در سرد ایفش هست بسم الله گفتن قبل از وضع اینم بازم اینکه از مسائلی هست که در این زم وارد میشه یک شخصی وارد در میشه قبل از وضو میخواست که بسم الله و نذرش واجبه بسم الله بگه آیا جایز یا آیا بسم الله گفتن قبل از وضو در مکان در تشریق الان هم خودمون داریم جایز یا نه الحمدلله گفتیم که گفتن جایزه و بسم الله هستی الحمدلله گفتن نه واجبه سنت دروسته حالا بسم الله اگه حتی میگه بسم الله واجبه حالا بسم الله بگه که میخواد سر روشو گوشوره هم هست خب من میگم که جوابی نمیده مت دارید که از من بیشتری این مدار جدید الاشایددللیلی باشه می میدونم. میکنم اللامهشه خ مستسن عباد محدث مدینه که گفتم قبلا چرخص وز حالش هم دادم یکی از تره محدسی این که از این بزرگ نداریم از این حالم فرم نداریم می که دستشیر رو غذا حاجت بلفرزن بین با که جایز نیست ذکر و پاداوش در ده دستشی جاییست که آدم نجاست جت اون اتاق که باک اون اتاق که مشاه از اتاق خود آدم پختره کاشی و شسته میشه و نایی که بگم چستش شو با و افروز و با فلان هم شسته میشه خب بگه نجافتی نمیمونه خب درسته اسم الله شعائر الله بهتره گفته نه و بگم بهتره هم نیاز به دلیگه گاره دلیگه که بهتره از کجا وردی؟ رسول الله میگه با هم به حاجت خب میرفتن حالا خونسن که در اختلافه که این انگوشتر در کدوم دست دوده در کدوم دست دوده در در چپ خب پس یکم فکرمون باز باشه خیلی بر کدومون سخ نگیریم اگر ترجیح دادیم تصمیه من خودم حقیقتش من خودم حرجی نمی بینم و دلیلی بر تحریم ندارم و همچین بر کراحت که بگم یک شخصی مکروه که تو اونجا ذکر آلوگی چون کراحت حقیق کراحت حکم شده ای. من دلیل نمی بینم که بگم در معهل درشویی مثلا بگه فرد کسی قبل از روزوش بسم الله نگید. خب یک مسئله دیگر هم که هست. مسئله آخر امروزمون. وقت از آنم هست. خب ادامه بحثمون. بحث یکی از آداب دیگر خلوت و قضای حاجت. خلوت کلمه جالب از دشویی خودمون. دستشوی اسم کاظویه دستشوی یعنی دلالت کاظویه داری خلوت اسم جالبتریه آلا که خلوت در لغت خودمون خیلی از سلاح بلی میشه جا برم خلوت خلوت کجا میکای بری خوب سوال اینجا مطرح میشه حکم حرف زدن به هنگام غذای حاجت چیه رفتی آقا تلفونت رنگ میخوره یا مثلا به فرد تلفون ضروری اومده یا مثلا بلتر اومدی زیدنشی بیادت اومد که یه چیزی بذاشتیم مثلا روی جا جایز خانم بلند شو که غذا داری میسیده و فلا برو به دال فلا برد آیا اجازه داری؟ حرف بداریم یا نه حرامه چیه اجازه هستیم که هم خریدی که اومدی که دو نفر میکنم باشم با هم صحبت نکردم یعنیم که مثلا بکننش دو نفر که همدیگر دارم میبینم حديث سهية الله أعلم درواية أحمد سعيدة خدري شنين سمعت رسال الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورته عورتهما يتحدثان فإن الله ينقص على ذلك يتحدثان أو يتحدثان فإن الله ينقص على ذلك حديث فنازن أحمد زيفا ماتوا بقي أمتها زيفا كذا. پس الان دلیل دلیل صحیحی بر صحبت نکردن نیست دلیل صحیحی نیست که آه من باشیم که صحبت بگویم من نه صحبت کردن لیکن حالا خودت اون حدیثی رو بگو که یک شخص یاد بر الله صلی الله علیه و سلم سلام میگه حالا در اونجا رسول الله عليه وسلم مشغول قدر حاجته خب الان الحديث بده بچه‌ها همیشه دو تا رسول الله سلام سلام كدن يك چيزي هستن با بعد رسول الله جوابش نميدن و ميگه ك اين نيكره درجات الله على غيرت طارق ميخواستم قضايى حاجتش بكنن و میگن که من دوسته داشتم که در حالی که تاهر نبودم اسم خدا را ببرم درسته خب در اینجا یک کرهتو تو اول لفظ کراحت اون کار بود در اینکه ذکر خدا بگم برای چی؟ برای که در جای قضای حاجتم یا اینکه که ندارم تاهر نیستم چون تاهر نیستم نه اینکه که جای قضای حاجت. هست. اینی کره توان اذکر الله علا غیر فهاره درسته؟ از از اوقع الله صلی اللہ علیه و سمن کراحت دارم از این در جایی که مثلا من یا در جایی که در من در حالی که من روی تحارت نیستم ذکر خدا را بگم پس ذکر خدا اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست نداشتن که در اونجا اعلان یا اگر دوست داشتن که ذکر خدا را بگن یا اسم خدا را ببرند، به خاطر این بود دوست نداشتن که چی؟ اسم الله را در غیر سهارت ببرند از اسم الله بر سر زبانش بیارن نه اینکه نه اینکه جای یا محل قضای حاجت جای ذکر خدا نیست چون اگر جای ذکر خدا نبود اصلا میگفت که چی؟ من دوست داشتم که در جایی که نباید ذکر خدا بشه ذکر خدا را بکنم و خدا را یاد بکنم رسولا چین این حرفی ندادن و تغییر الگیان الوقت حیاتی لاید نیست جایز نیست که یه مسئله پیش بیاد بعد شرب تاخیرش بنداده از وقت حاجه الان وقتشه سلام میکنه و جواب سلامش نمیده اگر اگر مشروع بود اگر واقعا مورد نظر شرب بود که رسولا سلام در اونجا میگفتم که جای خده حاجت جای خلوت، که انسان رفت برای جای قدر خاجت نیست این خلاصه بحث صحبت کردن، از بر اباحیتش از مادامی که ذکر خدا دارش نباشه اما از ذکر خدا درشون اومد چون انسان خود به خود در اونجا وجود نداره کراحت داره کراحت داره, داره. لیک این کراحت تا چقدر نقش داره. یعنی چقدر نقش باده می کنه؟ یعنی بحثی اینه که مثلا یک شخص سلام می کنه. جواب سلام و معاجبه. خب این این واجب بهتره یا این کراحت هدی. کدوم یک تقدیم می تقدیم بده. رسولان میگه که من دوست نداشتم در حالی که تاهر نیستم ذکر خدا را بگم. خب این چیز لفت میشه. شه که رسولان صلی الله علیه و سلم جواب سلام را آخر دادن درسته و بیرون اومدن مسائلی هستی در در ضمن همین بحث آداب و آداب نمیدونم سلام و این مسائل قابل اومد کی مت مد نظر باشه که اگر بله بر وجوب سلام جواب سلام دادن گفتیم این دلیلی نیست بر مخالفینی که میگن که چی جواب لازم واجب چرا؟ را چون رسول اللهی بر نموننده ما جواب سلام را دادن نه اینکه که کلند جواب سلام رو رها کردن میشی یه چید را به تخیر اندار اگر انتان میدونه به تخیر بندازه خب به تخیر بندازه خب این خلاصه بحث امروزمون میمونه انشالله افصه یا حتما فراموش نکنید احادث که تا اینجا خوندیم انشالله مراجعهش بکنید دورش بکنید که با هم دورش بکنید خب سبحانه کلالا و فنده سبحانه کلالا و فنده